آن وقت من از خودم صحبت کردم از اینکه در اکلدسپیوکس آرتس و محیط دانشجویان ایرانی چگونه همه را ضله کردند و از اینکه بیاستعداد هستم از کار خود ناراضیم به استاد صحبت کردم و او را مقصر دانستم او مرا وادار ساخت به فرنگستان بیایم او می توانست به من درس نقاشی بدهد و به زبانی که هر معلمی باید به با آن آشنا باشد به من بگوید که نقاشی جز تفریح چیز دیگری هم هست و من نباید زندگی خودم را برای کاری که جهت آن ساخته نشدم فدا کنم. بالاخره گفتم آخر از من چه ساخته است؟ او همه چیز در باز شد و مهبانو با چند بشقاب و کارد و چنگال به اتاق آمد و دعوا کرد. تو که هیچ کاری نکردی یالا بلند شو سفره را رو پهن کن. رومیزی تو گنجاست. میزو درست کن تا من چای و پنیر بیارم من از بلند شدم و گفتم مهری خانم بدهید به من من درست میکنم شما بروید بقیهش را بیاورید این مرد مرا مرعوب کرده بود میترسیدم به او نگاه کنم همانطوری که الان میترسم به شما نگاه کنم زن ناشناس یک مرتبه حرفش را قطع کرد آهی از تفح دل کشید آب درخشانی چشمهایش را تر کرده بود. اشک نبود. این زن گاهی خودش را فراموش میکرد. من نمیدانم چرا ناگهان خاموشی گذید و نخواستم رشته خاطرات او را ببرم. چند لحظه به من خیره نگاه کرد. آمن چشم بر زمین میانداختم. راست میگفت. نگاه او پر از عجز و لابه بود. با وجود این نمیخواستم این نگاه را هم ببینم. باز از نو شروع کرد. شما مرد عجیبی هستید. نمیدانم برای چه دارم داستان زندگی خودم را برای شما میگویم. اینها همه اش است به من نگاه کنید چه واهمه ای دارید. من دارم ته دلم را برای شما خالی میکنم. آخر نگاه کنید از ششمای من میفهمید که من راست میگویم یا دروغ دیگر آن قدرتی که تصور می در من نیست. می دانید من چجور آدمی هستم؟ من چیزی هستم که مردم معمولا آدم ظالم می‌نامند. تمام نیروی من فقط تا وقتی است که با از خود زعیف روبرو هستم. وقتی با شخصیتی بزرگتر از خود مواجه می دیگر هیچ چیز ندارم و ناتوانی خود را به حدی که باید به بیچارگی من رقت بیاورد احساس می کنم استاد شما تا وقتی مطیع من بود مطیع نه مطیع خوب صلاحی نیست او هیچ وقت هیچکس هیچ کس نبوده است تا وقتی که من برای استاد الاز بودم تا آن وقت با او بازی می کردم اما ناگهان همین که نیروی بزرگتر از نیروی زیبایی و هرچی شما اسمش را می خواهید بگذارید چیزی مافوق بلنگاری بر تمام هستی من تصدت یافت و زندگی با خوشونت و بیرحمیش من را در غرقاب بنداخ دیگر من از خود اراده و اختیاری نداشتم من باد با یکی بودم در هواشنا شنا می کردم قافل از آنکه سرنخ سر نخ در دست بچه ولیت شروری است می چه می بگویم در آن ایام هرگز به این حقیقت تلخ پی نبردم تصور می کردم که تمام حرکات و اعمالم به میل و اراده خودم است. امروز میکوشم که آن احساس گنگو از همپاشیده آن روز را در قالبی بریزم. خداداد هم از من قوی تر بود. این قلب رعوف و انسان دوستی بی حد و حسرش مرا مفتون کرده بود و من نمیتوانستم در مقابل او مقاومت کنم. چرا میگویم احساس گنگو از همپاشیده؟ برای اینکه صحیح هست که نفوذ اخلاقی او در زندگی من موثر بود اما هنوز فشار شخصیت او بر من به اندازه عظمت و جلال و استاد نبود هنوز وجود من سوخته و خاکستر شده نشده بود من مرید خورداداد شدم و میخواستم به هر قیمت شده به او کمک کنم به او به من میگفت ایمان و عقیده نداشتم اما میخواستم مورد احترام او باشم مرا مرد با ای بود. قصد نداشت مرا فریب بدهد. هر بار که به من دستوری سووری می میداد مرا به خطره که در زندگی ممکن بود رخ دهد متوجه می کرد. اما او هم نمی توانست یک شیشه شیش گرخانه بیش از حد است... است... ماتش مایه گداخته بریزد. پس از یکی دو هفته بعدی با او دوست سعی می شده بودم که بهر بانو و پیش من درد دل می کرد. چه زندگی پرتلاتوم اینها داشتند. در این حال همه وقت شاد و خندان بودند. مبارزه آنها را آرام کرده بود. چقدر تعصف می خوردم. اگر آنچه امروز می دانم، آن روز می دانستم. دیگر امشب زن بدبختی پیش شما ننشسته بود و تابلوی چشمهایش دیگر وجود نداشت و شاید استاد هم زنده بود معنای این جمله نیست که من او را کشتم نه معنایش این است که او هم خودش را دکشتن داد و هم مرا